رسول الله و آله الطیبی خواهرم محصولی اللهم رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و بحث و به اجماع در پیش طایفه از همین زواهر امرین از انتشار مدرسه بسولی بین اصحاب ما که مخصوصا در بحضات بود یا آشاش مسئله اجماع در میان آثار شیعه هم وارد شد به صداف آثار قوم که ما اثری از در اوائل هم نمیدیم در مختل بردار مسئله اجماع مطرح شد که جیت اجماع از شد ما دو محور در باب اجماع پیش از داریم یه محور بحث کبرگی و کلیشه که در اصول آمده و تقریبا الان قدیمتنی کتابی در اینگر داری یا مختصر اسمان این مدوم شیف مفید به نام تذکره که روشن نیست که آیا واقعا شیخ مفید به همین مختصری حصول رو نوشن یا چون این از تذکره در کتاب رو کمزور توادل کلاشیگی آمده مستبلا نداریم شاید هم مدوم کلاشیگی این رو ترخیص کرده برما فیلنگی مختصر بود دست ما رسیده در باب اصول و بعد مفصلش ابتداعا توسط سیر مرتضا مخصد که ایشون همونتو کرده هم بوده هم که داربای و بعد از ایشون هم توسط شیخ توسی البته این اون رو که اینجا به نیم دو بزرگو رو کردن به آزه تاریفی چون سیر مرتضا چهارسد و سیوی شیش دو سال درباره این چند شاخص هم سر زد. آقا 400 شاخص از سیف خاصی 436 تقاعدی و فوت مرحوم سر موناس. و مرحوم شیخ بعد از 460 به 60 به 60 رفت. و پارت مرحوم شیخ رو توضیح دادم لازم سر. به لحاظ نقش ظاهرا اول حساب شیخ منتشر بعد کتاب در حساب سید یعنی مکموشی در درمون زمان احراتی سریه منتشه رضا احتمال داره که آرای رو که ایشان از در میکنه از ده در سریه باشه همون چون که دارویشان میگن منتشه نشده بوده. برای این دو درگاه به نمه بیشتری متعقی از شده با این تفاوت که مکموشی بیشتر بند سرات بند سرات رو مرمون سید مرتضا هم اصل آجی یعنی هم ادعه از فروری در کتاب اصول هم بسانده هست همش نه اما از اون موادس سید مرتضا در ازدگیه اومده که مرمون شیخ به طور هم اگر ما باشیم حد باشیشه چون وقتی اصل ایت موادس نشد اون فرور هم تاثیر تأثیر نداره حبادشون؟ مثلا هر فرقی مذهبی و الان مذهبونا این طور یه وقتی ما قبول نگردیم خاینا خایید برو هم محلی از دهت و بعدها دیگه اوش ها دی در قطعه و اصول منتشه شده تو اصول اصحاب ما انتشار واسه بیشتر بردر امدامه از یعنی ما بینیشه به توسین تا مرمومه امدامه ما یک انتشار وسیع در اصول نداریم مثلا سرائل یک چند سفر البته شدیه به اصول نمیشه سرائل حکوم محبب هندی که نسبتاً مفصل کرده بشته یک کتاب معالی در اصول داره که کوچیک خیلی مفصل نیست و یه مقدار یه مرقب پاس اصول در مقداری یه معتبر از این سه کتاب اجرقیه که واقعاً داره مقام بالاییست مالی محببه که مفصله یک شرایط یشود در وارد شروع چند صفحه یا به اصول در آروم هست. اما از یه در اصول یه مفصله. از زمان ایشان، اند کتب کدوم اصولی گفته شد؟ در زمان اندام خیلی مفصلیه. گفته شد خیلی کدوم مفصل و کدوم دانی از اصول نوشتن بسیار زیادی رو که کرد اندام اصلا همون بخش رو یه مقداری با تفصیل و طبعه موانی شیعه به اصطلاح کنزین بکنه ما منظاره که بیرم مثلا رو فصل مفصلی در قیاس داره اما حقایی که احسانه در قیاس که بیاده ازنباه افلطانی ها بایید قیاس بما ما مباطل خب ایشون چون در بیتارهای احسانه بوده برداشتن آموده و قید از منطقه هاییشون احسانه ها مفصلی در اصول یه دوری سجد یه دوری سه مرحلهی و مرحله مصول الوصول و تحذیب و بعدم نهای به مشیش که سه مرحله ترکیشون بر رسول نوشن مرحله موقع نموطی و مرحلهی بسا تخصص و سهار نظر باید موزیم و اشتاری علامه اندامه علامه مهد در از از زمان علامه به بعد از زمان شیط تونسی و سید محتضا این محضر آز قبول میشه که ما با عنوان از ما عنوان کاشف هست حال به م مقلقی نه خودش می نفسی ما ای بحث این بحث محضر کردیم که شیط موید هم هستیم که ببین شیط و سید محتضا شده این بود نمیشه. رو که سید انتظ میگو گفت قاعده لطف نمیشه اجماع هججت د بانا ک که از فقها داخل در شیخ سوسی قاعده به قاعده روز بود به لام درخت لام ظاهر ت که ده مناطب سید داش تا نجکه من, من تو میاد بحث نفی روز نیامده اما شیخ از اشان میکنه که احتمالا شاد درسری درس احتمال به هرحال مرحوم سید میفرماد به اینکه چون غیبت امام از ماست این منافی لطف نیست با قاعد لطف نمیتونیم اثبار بکنیم که اجماع کاش قتبا شالشیختوسی ی نه با که غیبت امام از ماست مع این از باب لطف قاعد لطف اقتضا میکنه که قول امام هم در میان مجمعین باشه پس اختلافی که در بغداد رخ داد این دو بزرگوار که های قاعده رفت شامل موارد اجماع هم میشه بیانه به نهصل امامت یا این تصرف که, با که, که باید قول حقا به ما میناه مندم زایده رو بعدها اونه که متعارم شد در عالمان ما ترید سهل مرتضا روزا که قاعده روزی جاه نمیشه اونی که بردها در حصول ما جا باز کرد همون رای سهل مرتضا بود خلاصن در شکل چیلی میخواست باقاید لبس اصبات کشت رو امام بکنیم سیده ما زیاده میگون باقاید نمیشه به اطمان این سا فر ما همین رقید سیده ما که دارید باقاید میان میان با ما و خباقایی که به اون نصبتی بحث شدن همین رأی این مرحومی سیده مرتضا شد و بسید من امتماع بودم اینا در اینا در نشده. اجتماعی که من میدم شاید کلام خواهد که علامه رو با تقدیل از ایشان نمیداره و اجازه از ایشان داده شاید کلام خواهد در تجری که فرمود وجود گولت کن و تصرف رو کن آخر و ادم تصرف منا این چبیه همون کلام سیده محتضاست دیگه این ادم شبیه که قیبت امام و عدم نفسی امام. منشهش امتن منشهش مردم هم منشهش ما هستیم و عدم و اومنان و لذا این مذرر لطف نیست یعنی لطف امام در اصل او چوده دیگه لازم نیست در تصارفات قاعده این لطف رو جاری کنیم یکی از تصارفات هستیم اشمار با آره. این عدم و ممنن. احتمالی که من اعزم کنم بشه این تحرید در بود کردانم یا افتادن این حوالت که عدمون عدمون ایمان عدمون تصرف برده که اون مازشون عدم ایمان عدمون تصرف البته من خودم فکر میکنم اگر خاجه وجود وجودهو لطفن و تصرفهو لطفن آخر و کمال و تصرفی لطفن ساله تصرف که دارن که ندارن اون کمال تصرف که محسوسیت باشه و عدمهور عدم اینجا می کنه نه عدم کمال تصرف نه عدم تصرف عدم کمال تصرف نینا و این اصلاح وقتی هست داشته ما در این مومینم تصرف اون تصرف زاری داشتن ما کمال تصرف نداشتن این هم یک ستار سوی بقیه به ذهن من بیاند که اگر اینجور میپرموند بهتر روز این مطلب در آن بین سید و شیخ زایر تو مبارس اصولی ترجیح با سید شد که قاعده لطف در من بایده اجماع جاری نمیشه چون قیبت او و عدم تصرفیه این اصل وجودش شد لازم از که این تصرفات هم دارد مذاهر لطف شده امام تمام مذاهر اجتماع رو اداره بکنم چه برمی کنم؟ مرایده اجماع یا به اجماع اگر بناسبق قاعده خطای در اجماع قلمه رو بیان بکنم چه واده لطف از اجتماعی رو معیم بکنم از یک همه کار رو معیم بکنم اگه بنا شد این دیگه اخصاص به مثلا اجماع پیدا نظر به در که تا در طولانه می و دو جا در همین برس اجماع می و قال سی رو محتضا توش الله و هم داره مثلا اتفاقاً آن را هم در ذره هم دوستش نموند باشه و اراده هم الله سلام داشته. البته ایجاد از سری مازه در همین وضعیت وقت اجمان دو جانم میکنه که چون کهایت امام از ما این تعبیر آریلوت نمیتونه اثبات صحت سختی اجماع لکن چه خرابی میکن میگه نه. واضح آریلوتی است. اما بکنه که امام بیان دم. که اصلا بعدی از ما هم همینه. البته که سیستم اون عبارت از واجبی اثر نو بده به واسه خاطر سید که عدم اون نام به در مشا دی اثر اون در این مکتبه سیده روابط بیشتری داره اونی که باعث ترویج این مکتبه شد اینه که تاریخ نیست در حساب خاجا به هر حال این و این ترویج اثرها رو با نه اون اولین دوباره قبول کردن دومی بیشتر از دوباره حقص افراتیجه حقص بی این شکل شد اگر در مسئله ادعای ازمان میشه باید اون مسئله رو کاملا بررسی بکنیم اقوال رو بررسی بکنیم ممکن است نحوه اقوال و مسئله جوری باشید که ما کشغال ما میکنم این حجب دیگه این ممکن است چی جوریست این روشن این باید تو اجماع یک خصوصیاتی باشه مثلا مرحب نهاده بکنم اگه مدرکی باشه، مدرکی باشه، روایدی باشه این اجماع کاشف نشاط بقاب دارم اینشون به این رواید داره کنم از کنید در مواهی متخصیلی بیشتر رو اینو رو گنوان آمد، از اون تا مختلفه ولکه روحشون رو مخوام عرض بکنن بگیه این عبارت دارم یه جوری باشه که ما به ط مثلا می گفتیم اولین تیزی که به شدت هم دهید چه پیش حمله کرد و من همین صورتم استثنا کرد من قومه ملا محمد امین استرابادی میگه اگر خودم چیزی گفتن برای کشف میکنند که حمله کرد مثلا مرحوم استاد که عبون هم یه تعدیر دارد او نجهبیهاش که تو می کنند گفتن دقیق پنج ایشون اگر تسالح بود تسالح قبول میکرد حج شون اجماع است لذا در هم که مطلب مدرک علیه و نعلی اگر حصارم بود او رو کافی می‌دونست برای کشور ون امام سرعت داده از خب در همین کتاب خدای خويه مرحم و سلام که بعضی وقتا اگر نفر پر از واقعی اسم دادن رو, رو دیگر نه اگر ما این هزينه اگر که ما از کش و بردشون که وقتی اگر سنا پر از نهی که مطلبی رو بگن ما هر یدین داریم این حکومدار واقعی خب این هم یک جور یک جورش هم اینجوری یعنی اون صحرهات رو دیگه من وارد نمیشم اصل تر این بود گاوی مجموعه اقوان به حیثیست که اگر ما روش سعباد بکنیم میتونیم کشف قابل امام بکنیم حالا این چی جوری بود؟ جورش که جورش با آیا؟ من همونستاد گفت تسالوم بسید گایی بگنیشون که مثلا تسالوم رو فکر یه هست خواه خوش مید. یا اگر تسالوم رو شد خبر سعی هم ما هست میکنیم کنیم در بعض زمان خبر ایشون با اراز مشهور از خبر سعی دست رو میدونم اما اگر تسالوم برای علیه خبر شد روشون دست رو میدونم گایی تسالوم گایی مثلا پتن مدبوضان در محصوبان این درباب اجماع اشون تعبیرشون میده تسالومه یعنی ما کشف میکنیم از وقت که احوال نگاه میکنیم این قطعاً بین اصحاب جا افتاده که حکمینه در این که هم نظره بقیرانی مختلفی بزرکی ام نیست این با این سفر کاشیفه از امام پس فمابریم اجماعاتی که شیخ در خلاف مدرح میکنه سیده مرتضا مدرح میکنه علامه ایلی مدرح میکن جواهر مثلا اون ارزش علمی پیدا نمی تا اون حد تسالوم نرسه ارزش علمی پیدا نمی ارزش علمیش و حد تسالوم خب این طرح کلیه بعد. خب این وضعه کردیم در بین شیعه اون بحثایی که با اهل سنت چه که داشتن مطرح نشد تمام احتمال در علمای شیعه به این کیفیت رضع. و به این کیفیت کشف برگشت کجا این رابطه رو پیدا بکنیم که اجماع رابطه داره واقعه اولیامون دنبال این افتاده هم یه دنبالات ها تشته معامل و وایات روایات آیات دلالت دابند اون بخصه هاییتون کنم برک کرده هم اینطور خب سوالی رو که مفتن کردیم چرا در وقتا این مطلب مطرح شد اجماع رو وارد کرده از مصورت واقعا دلیل روشن این ما الان زاهران چون دیگه یواش داشت کل کل منطقه دیگه اجماع ها احتمالا این بوده میگن اهل سنت دیگه قطعی گرفت که اجماع خجت هست و ای کسی اجماع رو اعتنام نکنه کنان تو خلاف اسلام مثلا شد دن کسی دیگه اجماع بود لیگه نام بله تا که اجماعی که شما خود جد فرق فقط به عنوان این که اجماع عممت ما میگیم همیشه اجماع عممت ملازم از بابا و در اما احتمال بگیم نمتش این باشه خب یه احتمال هم هست نمتش این باشه که فتوای زیدی‌ها ها شد. چون زیدی‌ها ها در مقابل ترجمه اجماع مثل خواه های مدینه مثل خواه های ظاهری در خواه های شیعه که اجماع رو بجرد زیدیه فتحاشونی چطور مالکی ها میگن اجماع اهل مدینه زیدیه ها ترکشون بود که اجماع اول اطرت اخی اطرت هم در تفسیر خودشون در کتاب زیدیه اصولشون که من بیدم کل منکان منولد الامام الحسن بر حسن برای حسین خصوص فیروزاتو در تنکاست بگفتیم ساداتی اصلا عمری احنابیه از اولاد عمر ابن علی ابن علی اونا نه یه داشتن کتاب داشتن به روش بودن تا اونا نه در نظر اینها اون اجماعی وجهت بود که از حسن انسان الله علیه مرشد از به اولاد همی و مثلا ساده دیگر از بنی عباسی اول از عربات ساده از عمر نهری بودن از محمد حنفیه بودن اونا نه خصوص زرگیه خاخره امام این امام این الله علیه شما زادرشون. آیا احتمال داره این رأی تأثیر گذاشته خیلی بعید میدونن اول ما اجماع تغییر کدن ما رأی یک نفر از دوریه رو میگیم اجماع که رو خیلی بعیده اصولا معلومی در افکار شیعه و یا در افکار دنیای اسلام تأثیر گذار بودن این هنوز روچند نیست خیلیه در وقتی که یه در یمن جدا شدن و اصلا منحصر در شدن که قطعا هیچ بود ما خبری از اونان دارم که تأثیر گذارن باشن بله در قطع دوم دو و سوم قرار که عوال شارون مقداری از کوفی ها که اخباری مثلت بودن زیدی بودن چرا اونا تأثیر دارن؟ البته واسه تأثیرشون هم به نشیه نسبتا بیشتر تا اخری شدن که معدود هم مثل ابن اوده که اخباری بزرگی بوده بله کتابی روایاتیشان الان ما از آثار ابن اوده که تقریبا تأثیر گذاره توی یه داریم هم تو فهرس نجاشتی هم تو فهرس شهر توسی داریم تو, تو روایات هم داریم البته تو مختلفه مثلا در کتاب اقوط نعمانی عویز برس و محمد ابن ارباری مذاره اسم محراب قربی زینر ابن عبی زینر ابن عبی زینر ابن عبی زینر درست نیست روشن نیست اسمشی به هر حال ایشان ازلام را تاله علیه در کتاب قیبل از ابن عوضه زیاد حدیث نام میشه بگیم تقریبا در کل میراسای حدیثی ما بگیم مثلا چهار درست های درست های درست هشت ابن عوضه وجود در و این هست بعدها هم زیدی ها در مواهد کلامی در بغدا خیلی مؤثر بودن مثل ابن اول حدیب مقدار زیادی از مطالب خودش را از استاد میشه استادی ابو جعبر نقیل چون زیدیه ابو زیدیه اما این بیا تأثیر بوده که در تفکرات اصولی شیعه یا سنیا خیلی وعیده فوق العاده دعید اون رعی زیدی به اصلا در جا مؤثر باشه ظاهرن همون موضع گیری راجع به اقل مثلا در وقداد جا اختادون ما خواستن ما هم قبول داریم اما ما شرایطم باشه ما فهم رو کنیم واقعا با صفح امت با اگر صفح امت که قطعا طب حدیث سرالی دائما باشه امام باشه ظاهرن راجعه حال این خلاصه بحث کبروی اجماع از قدیم ایام که در شیعه شد تا این زمانی که به مدرد شد مدرد سن که زوایای تره بحث چطور رود در قرم پنجم و و اواخر چهارم و اوال پنجم تره کمروی بحث بیشتر با اهل سنن رود بعد از مرموم شیط توسی بعد از اینکه دیگه مکتب بردار حتی به لحاظ ظاهرین و تلاشی شد بحث شیعه در کیفیت استشاق طبیعتا به طور طبیعی قبول دل کرسته چه مگر با یه خصائصی یه منزد تر این خصائص بحث شد که این اجماع بازاری داره چه باشه که بتونه کاشفه از قبل امامش این خلاصه بحث البته قالدان در بحث خصائص خیلی به صغریات مثلا این تسالون شده حالا ممکن دو تا فقیه بمنام هم مخالف بودن خیلی در مرحله صغرات تشریحشون دقیق نبود اما کبراشون این بود که هسته میمونه مرحله صغرات این تا اینجا مرحله صغرات کبر. کبرات و اما مرحله و تفسیر نهایی که میتوان از کلمات مرموم سید محتضا در آقر استکشافتشون کلمات سید محتضا اینجا مرمون با کلمات شفت فرقی داره شیخ چون خبر واسه رو با حجت میدونه است لذا اجماع رو در ردیف اون میدید اونم یه بیو هم تصدیف میکنه میگه اگر شما قول ام... اجماع رز با قول امام مجد... کاشو حجت میدونید با چه فرق با خبر میکنه؟ شیخ دعا میدونید فرق بشنید که در خبر معین از قول خدام امامه در اجماع معین نیست یعنی به عبارت اون اخرام اجماع در نظر شیخ توسی همغدیف خبر میشه سیر مرتزا خبر واحد رو حجب نمیدونه <تصفيق> ببنابوشنش رو سیر مرتزا اصولا خبر واحد رو حجب نمیدونه لذا در تصورات اون میشه اجماع همدوش خبر باشه اون اون با حجب نیست برازه شده این خرم احس کردیم کرارا در خلاف زیاد میگه دلیل و اجماع در رو و برای در روایاتون و اخبارون رو. سید مرتزا در انتصار در این دونا از اجماع موسه کرد نیمیگه اخبارو سید مرتزا در کتاب انتصاب همیش در نزیش اجماعه این صرفش اینه البته این تو بحث خبرواهد خواهد آمان سید مرتزا ادعای اجماع کرده که خبرواهد پیش شیخ حجت نیست و شیخ توسی ادعای اجماع کرده که خبر خبرواهد حجته اگه این چرا سید شیخ و هم اینکه دای باور اختلافدارن اینشاالله اونجا توضیات رو داد جایی که اون هما توضیح بدم از خارج میشه اونجا توضاتش ععرض کنیم که سید به نظر ما به نظر نهایی ما که این ش اون عرض میکنیم مردم شیخ توصی میخواسته سعی بکنه سل مارتظان با محشهور معافش شدن با این بر معفقیه سید متارتزان میگه خبر بجه نیست اما عملا در مقام فاب بهه والاب سر میگرده عملا بجب اما این اینجور نیست درسته یکی مطلب شیفتون بیا خود سید از کجا این خطاب نظر این کتاب حریض و کتاب زرار مثل کتاب حسن محبوب و حسین سعید و همین کتاب ها دید اونا می کنید میان روزت هم درسته لیکن از سر در همین مباحث و اینشالا بعد هم توضیح خواهی داد سید موزا به روایات بر می گرده اما به عنوان دلیل لبی می دار نه دقت لحظی این روح خلاف بین شیخ و بین سیده قومی ها روایات برمی گشتن نه مثل اهل سنت از اهل این سنت معزمشون موزمش قائل با حجیت تعبودی خبر بودن و تعبود را هم بیشتر رو عرد می بودن. خبر عرد ما تقریبا این مسئله در میان بزرگان ما نداریم قدماییم اونا می بردن به حجیت شواهد. الا انتلاب کنمی ها شواهد رو میشه وجودش در کتب مشهوره و تلقی مشایط و تلقی از اینجوری حساب میکن. اده از بردادی ها شواهد رو موافقت با کتاب و سنت حساب میکن. اده ای شواهد رو اعم می یعنی با شواهد تاریخی معهدش باشه به با عقل قبول بکنه دو خلاف عقل نباشه با شواهد کتاب بیاد با شواهد سنت بیاد با فتاوای اصحاب بیاد یعنی یه, مجموع... یه شواهدی میگیره که بیشتر بردادی ها این بوده این مبناهی اخیل و هر حال این مبانی برای این مبانی من ایت المبناه خوب دقت بکنه اینا میگوستن خبر با شواهد خود در مقابل اهل سالنه نه خبر با میعیار <تضحق> <محیار> یعنی بود این دو میعیار یعنی چه آده همیه که رابیش آده بود بود جده و رضا از کردید اده اینقدر رو میرسن هستن مبارس رجالیش حدیثیشون هم هست دراجم حدیث دارم ما هم داریم کتاب کشی داریم یه از اهل برس داخلشان داریم ما اون ساده بودم ما اهل حدیثی همونجوری ما شما حدیث، هنوز که از جانب محمد هم علی گفت بله، کلام خداشون رو ما انجام ندادیم. گفتم من جرب محمد من حرفی نگفتم، من هیچ چیزی نگفتم. گفتن نا قبول چون ثواب تفش ما دادن شده. خودش وان که بشین من کشیدیش قبول نمیکنیم واذ اگر هم از طرف این این تحریه تفکر رو می‌خوام بکنم. با این اینکه بعد اتنی. اینقدر جلو رفتن که هر خبر کذاب و دجال و وضا اینقدر شواهد قویم بود که از این کذار من از کتابش نبودن نه تو اونا که از دواز سارتانی سوال اعمال صدو سند از درک میکنه نوحب اسم نوحب, نوحب برسته نوحب, نوحب, نوحب, نوحب از زهاد بود بوده این شخص از عزیز. از زهد و او و, و اهل قراسان مرد مرد و زهر. یعنی حدیث مفصل جعل کرده با سران ام قرآن مردان من قرآن صورت همت که دارم قرآن صورت آله همه تدکیل صورت براها ام رسول الله بهش گفتن این حدیث گفتن من جل کرده. جرد کردم با اون چرا جردش مردم بودیم مردم شده به میخونم گفتیم بهر قرآن مردان <تصفيق> <تصفيق> حدیث کرده خب بعضی از که آتون حدیث رو سباب العمال صدو آنها هست و همین اسلام هست, این نوع هم هست. محب نبی اسمه محبتی اولیسی این شده که ادهی تصورو کنند شیخ صدوق و مثل اخباری اهل اخباری سومت نیست و هر حال بازم بستنشون شدن و حضرت خبر واحد خود دقت مرحوم شیخ خیلیت الله نفسه اجماع رو که عبارت از فتحابایی باشه طبق قائده لطف مثل خبر واحد می برسن فقط خوندیم عبارت هم خوندیم فقط اون خبر خبر واحد تفسیریز این اجماعیست پراشده مرمون سید محتضا به عقص ایشانه خبر واحد رو مثل اجماع میدونه او اجماع رو مثل خبر واحد میدونه روشنش اشون خبر واحد رو مثل اجماع میدونه یعنی دلیل لبی میدونه در حقیقت در ارز کرده من چند باقی مرمون سید مولتزا به خبر نگاه میکرد که از خبر به حکم برسه کار به خبر نداری پس ما دو جور وصور و شواهد داریم یک شواهدی که متن خبر رو ثابت میکنه میشه یه نوجه خبر یه شواهدی که حکمی که در خبر هست این معناش عدم و خبره. در حکمت هم هست و زاد شما تعجب می‌کنه چرا شیخ مثلا خیلی جام رو یعنی اسم اون کلی اخبار و هم ریوایات رو اما سلیموندو با این همه ریوایات مسئله مسائل میگه دلیل چرا توی گایم میگه دلت علیه ریوایات اصحاب ما گای داره و گایم تعجب که ایشون گفت دلیل مسئله در مسئله هست که ایشون ادام روایات و از اصحاب ما تضافر در این مسئله یک زانوات قدرتی از عجب کار یک باب دیگه هست که فرض سید اشتباهه که باب دیگر نمیدونم به هر حال یک دانروات هم تو اون باب ما نذاریم که ادایشون که روایت کثیر از روی مطلب به هر حال مرقوم سید مرتضی بیشتر نظرش اجماع احتمال هست برای ایم و که مراد از اجماع در کلمات سید مرتضی این اجماع مسلح نباشه این اجماعی که مثلا ایشون نشسته باشن در وردا پس کنه سال و پنجات بودن آراع سال 50 جمع بکنن احتمال داره این نباشه احتمال داره اون رعی متلقای و قبول مرادشه مراد از اجماع. یعنی این در طایف جا افتاده مثل یعنی در طایف جا افتاده که بهر مجلس نمیشه با اینکه که خب قبلا راست تنجیز بهر داشته این دیگه تلقیه به قبول شده مرادش از اجماع. این تلقیل و قبول و او به قصد ممکنه با این وقت خیلی از شبه ها اده که معروف سرونده در مسئله ادعای اجماع میکنه و این و رای نیست و این رای اجماع احتمالا مراد ایشان با مجموعه که جلوتور کلی در مکتب بغداد تلقیل و قبول شده و این میشه در یک زمانی تلقيه به قبول پیشه تا زمان دیگه تلقیه به قبولیش عوض باشه بشه این رو اهل سنت هم دارن میگن ممکنه در ایران اختلاف باشه بعد از ده سال اتفاق بشه میگن همین که اتفاق شد حجته بعد از 5 سال باز اختلاف باشه درستو نیارتم سر موضوع که اهل سنت داره یعنی لازم است به مورد چه منسارا حالات به تعالیم تعال و کلام ما آها علمی مثلا تا قبل از مرحوم استاد ما اکثر فقها کسات هم گیره بودند. در هدیه خم نیست آلاء خویارا نفر نهی کردند. دوی بعد فتح الان به نظر من اصلا استقصال آرا نگردم. به نظر من اکثر آلاء میکردم برای خویارا. استن اکثریت وای میشه؟ این سراغ بریم یا فکر میکنم که خشی بشه بیشتره. به نظر اکثرشون قائله. من شوم آرا تر. احساس میکنم نکلم مراجعه به رساله گردم. احساس این میشه این مساله خب دقت بکن این فرد داره با اجماع این شبیه اجماع اهل سنته اصلاً یه فروعی دارن اهل سنت از جمله فروع مهم اهل سنت که اگر مسئله خلافی بود یه دفعه اتفاقی شد 5 سال اتفاقی شد باز موضوع خلافی میاد میان یعنی همه که اتفاقی شد حجته میگه اتفاقی شد دقت بکن ولو قبلش خلافی باشه هم خلافی باشه احتمالی که من میدهم در حد احتمال مگوش ندونم بررسی کنیم ظاهرن مراد سیر از اجما اون تلقیه به قبوله بلازا این تلقیه به قبول باید تو مسائلی میاد که در روایات هم نبوده اما در بعدا لاعب به ذهن ایشان تلقیه به قبول شده ظاهرن مراد ایشان این باشه ظاهرن و این در اداد خبر واحد نیست بلکه خبر واحد را هم ارجاعش به دین به همین تلقیه به قبول یعنی اون مقداره از احکام خودت تفکر داریم حکمی که در خبر هست و تلقیه به قبول شده اون حجته نه خبر حجته این واسه نوعی از چیزی شبیه استدلال مثلا لذا به ذهن ما دعای اجماع سید مرتزا یک شکل به اصطلاح تقریبا مثلا عدم دقیق یک شکل غیر دقیق از همون اجماعی سیر کلمات احسانت بوده فقط اونا سر میکن در اجماع اتفاق باها باشه ایشون سر میکن در اجماع تلقیه و قبول باشه اگر این باشه در مرحله صحرای این ما باید با تحمل بیشتری بررسی بکنیم یعنی جاهایی که سیر مرتزا ادای اجماع می‌کنه، این این لاعقل معناش اینه که بین علمای طایف و اون وقتی این حکم تلقیه و قبول شده این مقدمه در این بفته در انتقال از کبرا به سقرا شده بحث کبراوی کردیم که از سیر مزد با این که کاشه هست با امام به امام داخل در مجمع اینه از این جهت به بحث سقراوی ظاهرا توی بحث صغرهی مراد سریه تلقیه و قبوله نه اجماع اصطلاع خود دقیق بکن. اینجور نبوده که در مسائل سلموزه رو یکی یکی آر آر رو بکنه. فکر نمی شواهدی که در اطلاقاتیشان و کلمات ایشان آمده، معیل این مطلب نیست وقتی این نشون میده ده دقت در یک فکره از زمان چون سلموزه 436 وقت شد ایشون شده شهر مفید هم که و 13 و در یک برهی زمان در بغداد لاقل یه از آراء فقهی ترفیه به قبول شده این زمین نتیجه گیری واضح شده <تصفيق> <تصفيق> یه مقدار از این آرا ترفیه و قبول شد شهر در خلاف یک مقدارشی حکایت میکنه سیزمونزان در کتب خودش پس به لحاظ اگر سوال بفرمین که این اجماع چه در شیعه و به چه شکلی مطرح شد آیا شیخ سیر موضوع دلیل مثلا و دلیل و اجماع ارموزه کرده آیا واقعا در ایشون مثلا مراجعه کردن بقل... مثال برد یک کنان سوال کردن گفتم فکر میکنم ناظر تلقیه به قبول بردزای خویی در حدیه خونس هست بعد از به خلاب قبل که تلقیه به قبول این بود به که خب روایت خودمون رو واسه این است سری هست که بیان میشه تصور بعدی شده که این خمش داره اون خطیرش به خاطر روایت علی المحزیاره اونم هدیه میشه یا از جائزه, جائزه پلیس سلطان میره واسه الان البته از جائزه با هدیه مرادته اما عنوان هدیه در روایت دیگری اومده تشتيه قانون هدیه شده باعث جائزه میمونه الان که شماها بنابر این اونی که ما الان حالا هر وقت میخویم اون رو جمع بکنیم نشان میده در بغداد در برمه چهارون و پنجون خود خب دقصه میکنیم یه ادعارا بین فقه های شیعه بغداد متلقا به قبول بود یه ادعارا بین فقه شیعه در بغداد متلقا به قبول بود حالا از شما سوال میکنیم آیا این کلقیه قبول در فقه های بغداد کافی هست برای حجیت؟ جید میگیم نه فقه های برای با. پس نقطه خلاف این شد سیر ماتزان گفت این کافی هست در موجیه آرایی در بغدار قرن چهارم و پنجم تلقی به قبول شده بود روشانی که محله ما این در این برقه تاریخی قرن شهارون که در قام شخصیت مثل ابن بابله پدر در پدر را صدور پسر بودن چین چیزی هم نبود. روایات تلقی به قبول بود کتب طرف دقیق قررشی دقیق کردید صدوق در اول کتاب من لعی هزاری طلبی و جمعی امافی مستحر در کتب المشهوره علیتی علیه حل معول و علیه حل منجه. پس در قوم کتب و روایات طرفیه و قبول پود در بغداد یک دست پتابا و اقوال طرفیه و قبول بود چه قدو برم اسم مثل کتاب حلید دارو سردن عبدالله که تفا از کتاب رو ایشون اسم دنه الکتاب المشهوره علیتی علیه المعول و علیه المرچه بعدم اسم بردن میگه وقعه ازاله که من الو اصول و المصنفات من الو اصول بل ما از کلی در خود برداغش این تعبیر هست الو اصول و المصنفات این من کلام این بوده که ما در مرجعیت مون اصول مصنفات برگردیم این مکتب بود یا ما در مرجعیت مون به اقوال برگردیم خب بردیش از این اصول مصنفات بیر خب جای معارض دیگه اون تلقیه به قبول در وغزاز روشتاب بکنه این مکتب رو سید مرتزان روشت پس مراد از اجماع در کلمات سید مرتضا حتی به نظر ما در کلمات شیخ توسی اون اصطلاح دقیقه اجماع در کلمات سنیا آمده نیست خوب در وقت بکنه در حقیقت اون تلقیه به قبول بود یعنی مقتب خوب و مقتب بغدا در یک جهد مشترک بودن به حجه خبر عدن مثل سنیا بر نگشن شهر دار که اجماع اجماع کنه به حجه به خبر به اصلی گوه اجماع کنه به حجه به حجیت خبر به که خبر به ما هو. خبر به معیار واحد مثلا معیار اداره ترابی که اهل سنت می بوتن معیار مثاقت رابی خواهی خوی قائده خوی خوی ایشون یه هر خبری که رابیش واسه سقه باشه حجه تعبودن پس نه در بغداد قائده این حجیت تعبودی بودن نه در قم قائده حجه تعبدی بودن استاد من علامه فرق می کنید؟ برد از علامه فرق علامه اولی کسی بود که فرق اساسی مشون حجیت خبر صحیح رو مصدر کردن و به یک درجه حجیت حسن علامه این دو رو حسن رو با یک شبیه اهل سنت ان در بحث خبر ارزش می حسن رو همیشون با یک شرایط قبول کردن صحیح رو مطلقا قبول کردن حسن هم در شرایط یعنی شرطش که معارض دانش که خیلی خطورتو نکنه سغیر نکن صحیح رو مطلقا قبول میکنند خبر حسن رو اگر معارض نداشه قبول میکنه این مبنای علامه در حجید خبر من و آقای استاد ما مبناشون حجید خبر ثقه است حسنان قبول نمی صحیح رو چون راوی سقه بود و موسط رو که راوی شیعه نبود اما سقه بود قبول میکردن نه اینجالا عنوان خبر صحیح و موسط. هر هرچی که راوی سقه باشه اسم اینا ما بذاشتیم حجید خبر ترکودن اینا حجید خبر است. هر خبری که دارای واجد این معیار باشه حجت است. حال اوقات اصحاب عمل کردن نکردن، اعراض شده باشه، نشده منکر باشه، نباشه. شاز باشه، نباشه. اهل سنت صحیح رو بدون خبر نمیگه، یعنی اشتباه نشه. مجرد این که راوی ثقه باشه، به صحیح نمیگن. شرایط دیگه هم برعکس صحیح اهل سنت با صحیح ما فرق میکنه تازه اهل هم درجه صحتشون مثلا صحیح بخاری یه جوریه، صحیح مسلم جوری گریه. البته کل ماه او صيام پیشو پیش پیشو مستن از عذرا است ممکنه پیش مستن صحیح باشه پیشو بخاره نباشه ما بازیم این بحث بشیم تو بحث قراره واحد یه مقدار مباحث یه گزارش سابقه باشه یه گزارش بعد ان شاء پس تا اینجا به این نتیجه می‌خازیم برسیم که فرداز یه توضیح ان شاء که فردا دیگه توضیح کامل شه و نیمه تمام شه چون ظاهرا در بغداد اجماع سید مرتضی را شیعه یک نوع تلقیه ده ابو در بغداد اینو تلقی قبول برداده نه اجمال مصلح جمع رنگ بکنه جمع بکنه این رأی تلقی بقبول شده این مقدار با مرحوم سید مرزده کاشت می‌دونه، از قول امام میگه امام بخشن داخل در این فقا هست چون سید روز و عجب